برخیز و بیا بیا برای دل ما حل کن به جمال خیشتن مشکل ما یک کوزه می بیار تا نوش کنیم زن پیش که کوزه ها کنند از گل ما چون فوت شبم به باده شویید مرا تلقین ز شراب و جام گویید مرا خواهید به روز هشت شیابیید مرا از خاک در میکده جویید مرا چون عهده نمی شود کسی را، حالی خوش کنین دل پرسودارا، مینوش به نور ماه ای ماه که ما بسیار بتابد و نیابد ما را. آشق همه سالم است و شیدا بادا، دیوانه و با شوییده و با رسوا بادا، در هوشیاری غصه هر چیز خوریم، ورمست شبیم هرچه بادا بادا.